دانشجویان عزیز به دانشکده کوچک کتاب مقدس و سری درس‌های مخصوص ازدواج و خانواده خوش اومدیم. ما مطالب زیادی ها مختیم و شکی نداریم که شما میخواد که این درس‌ها رو مرور کنید مخصوصاً متن‌های کتاب مقدس رو که در اون خدا هدف و نقش خودش رو از زندگی ما برامون تعلیم میده در این درس معلم ما به بعضی سوالات رسیده پاسخ خواهد داد و به موانعی که سر راه یگانگی در ازدواج و خانواده مسیحی هست نگاهی خواهیم داشت. پس بیایید با دل‌های آماده تعلیم به درس امروز گوش کنیم. خوشحالیم که در آخرین جلسه از سری درس‌های ازدواج و خانواده نیز با ما همراه هستید. میخوام با پاسخ دادن به برخی از سوالاتی که شما کردید این جلسه رو شروع کنم. اولین سوال از آقایی بوده که اخیراً زنش را از دست داده. بود. سوال او این بود، آیا من میتونم مجددن ازدواج کنم؟ اگر میتونم، آیا من هم باید لیستی از مشخصاتی رو که شریک زندگیم باید داشته باشه تهیه کنم؟ اولا من واقعا معتقدم به جز کسی که فرا خونده شده باشه و عطیه تجرد رو داشته باشه، بقیه افراد باید ازدواج کنم. کتاب مقدس از همون ابتدا میگه که خوب نیست آدم تنها بماند و این کلمه آدم، به منزله انسان هست و تنها اشاره به مرد نداره من معتقدم که این هم برای زنان و هم برای مردان بیوه صدق میکنه من معتقدم این حتی برای افرادی که طلاق گرفتند هم صدق میکنه من معتقد نیستم که خدا بخواد مردم تنها باشن مگر اینکه اونها رو به این کار فرا خونده باشه و وقتی اونها رو فرا میخونه به اونها عطیه تجرد هم میده که به نظر میرسه به معنی کمال بدون ازدواج هست کسانی با هیچ چیزی جز عیسی مسیح احساس کامیابی نمی‌کنم و من فکر می کنم اونها شاهدان بزرگی برای ما هستند. من به این معتقدم. اما به جز این مورد فکر نمی کنم خدا بخواد کسی تنها بمونه. من همینطور معتقدم هرچند همه شبانها شاید با این موافق نباشند. من معتقدم اگر ازدواجها در آسمان انجام میشه شبانها باید ترتیب اون رو بدن. من خیلی از مردم را عقد کردم. من معتقد نیستم وقتی کسی همسرش را از دست میده اگرچه اون حتی قمنگیزتر از مرگ فرزندان هم هست اما معتقد نیستم که اونها باید بقیه عمرشون رو در تنهایی سر کنند. من مردی رو میشناختم که وقتی دبیرستان میرفتم مربی ورزش ما بود. وقتی همسر او مرد او به مدت دو سال نوار مشکی به بازوی خودش میبست و بعد از اون هم تا آخر عمرش هر روز کراوات مشکی میبست. او احتمالاً ازدواج خارق‌الالدی داشته. حالا از بسیاری جهات این تأثیرگذار هست و من مطمئنم که او زنش رو خیلی دوست داشته. اما فکر نمی‌کنم در هیچ کجای کتاب مقدس بگه که شما محبتتون رو با دست کشیدن از هر چیزی به مدت دو یا پنج سال نشون بدید. وقتی من دبیدستان می‌رفتم، مادرمون مرد. پدر من امیگان قمیم بود و به مدت پنج سال مجرد موند. و من واقعاً فکر می‌کنم که این اشتباه بود، چون که در طی اون مدت ما بچه ها خود سر بار اومدیم. من فکر می کنم وجود یک مادر برای ما بچه ها خیلی ضروری بود این احساس شخصی خود منه پس من در جواب شما با قاطعیت میگم بله خدا نمیخواد که شما تنها بمونید. و این خیلی مهمه که با دعا ملاحظه کنید که چه نوع زنی رو خدا به طرف زندگی شما هدایت میکنه کسی که با زنی ازدواج کرده که ادعا میکرده ایمان و مدتی بعد از ازدواج مشخص شده که او ایماندار نبوده حالا این سوال پیش میاد و این سوال شامل دو بخشه. آیا اون مرد میتونه تقاضای طلاق بده و بخش بعدی سؤال اینه که آیا اون میتونه بعد از طلاق مجددا ازدواج کنه یا نه؟ من واقعا فکر میکنم که وقتی چنین اتفاقی میفته شما باید اون رو با چیزی که اول قرنتیان هفت در مورد ازدواج بین ایماندار و غیر ایماندار شرح داده مطابقت بدید. این در همون دسته قرار میگیره. صرف این اینکه کسی اقرار میکنه ایمان داره به این معنی نیست که او ایماندار هست. اگر رفتار اونها تماماً برخلاف اقرارشون باشه، اون موقع من فکر نمیکنم که شما ملزم باشید که فقط به صرف اقرار اونها به ایماندار بودن به زندگی با اونها ادامه بدید و یا با اونها مثل یک ایماندار رفتار کنید. قوانینی رو که در این مورد هست به خاطر بیارید، اونجا حق انتخاب به ایماندار داده شده. اگر این شخص میخواد که از مرد ایماندار جدا بشه و او رو ترک کنه کتاب مقدس میگه او رو طلاق بدید و میگه در چنین مواردی ایماندار تحت هیچ قید و بندی نیست حالا البته این باید تفسیر بشه و تفسیر من این هست که اون شخص آزاد مجددن ازدواج کنه من اون ازدواج قبلی رو ازدواج از نظر خدا نمیبینم من فکر میکنم به احتمال زیاد ما در چنین مواردی از اراده خدا خارج میشیم. و بیشتر اوقاتمون رو در اراده مجاز او زندگی می کنیم و شاید وقت اندکی از عمر ما در اراده مطلق او صرف میشه. به این دلیل که من فکر می کنم، وقتی پولس رسول برای کلیسا دعا میکرد در رأس همه درخواستهاش برای کلیسا این بود که اونها از اراده خدا آگاهی پیدا کنند شناخت اراده خدا کار آسونی نیست و ممکنه اون رو از دست بدی. شما باید در مورد تصمیم برای ازدواج، و یا سپردن هر تعهودی با دعا پیش برید. همونطور که گفتیم برای بچه دار شدن و دیگر چیزها هم به مقدار زیاد باید دعا کرد و از خدا خواست تا در این مسیرها ما رو هدایت کنه. ما دو سوال دیگه هم داشتیم که خیلی شبیه هم بودن و مفهوم کلیشون این بود. زن من اصلا به روابط جنسی علاقه نداره. برای اینکه او رو علاقمند کنم چیکار باید بکنم. خب صادقانه بگم من به عنوان یک شبان بارها این سوال رو شنیدم. البته برعکس اون رو هم شنیدم که زنی میگه شوهر من علاقه ای به روابط جنسی نداره. همونطور که قبلا هم گفتیم روابط زناشویی مثل یک جاده دو طرفه هست. اما میخوام به کسانی که این مشکل رو دارند و میگن زن من علاقمند به روابط جنسی نیست بگم، اطمینان حاصل کنید که در رابطه با روابط جنسی آموزش های خوبی دیدید یا نه. شاید لازم باشه خود شما، با یک متخصص روابط جنسی تماس بگیرید تا مطمئن بشید که آیا خود شما درک درستی از روابط جنسی دارید یا نه. دومین پاسخی که میتونم در این رابطه بدم اینه که ازتون بپرسم آیا زن شما در روابط جنسی به رضایت و کامیابی میرسه یا نه. اگر هرگز به این رضایت و کامیابی نمیرسه، بذارید سوال دیگری از شما بپرسم. اگر شما به عنوان یک مرد هرگز ارضا نشید و به کامیابی نرسید اگر فقط گاهی اوقات به کامیابی برسید و یا ندرتن به کامیابی برسید من فکر میکنم این سوال منصفانه ایه آیا دلتون میخواد که باز هم روابط جنسی داشته باشید؟ پس اگر مشکل اینه من میخوام به شما تکلیفی بدم وقتی که این درسها رو میخوندیم گفتیم که اگر کسی به لحاظ روحانی در جایگاه خودش قرار نداشته باشه اگر یکی از طرفین بیمار باشه و یا به لحاظ نمیتونه وظیفه خودش را انجام بده. میتونید توقع داشته باشید که خدا از طریق کسی که خوب هست کار کنه و اگر شما کسی هستید که خوبه و همسرتون خوب نیست اگر شما رفتار درستی دارید و او نداره اون موقع توقع داشته باشید خدا از طریق شما کار کنه. پس اگر او بخواد توسط شما کار کنه معنیش اینه که شما چیزی رو که لازمه بدونید یاد بگیرید حتی اگر لازم باشه مشورت بگیرید و بعد به این موضوع بپردازید قانون طلایی چیز قدرتمند و بسیار موثریه هر چیزی که شما مردان برای خودتون میخواید برای زنتون هم بخواید این کل محتوای کتابهای شریعت و نبوت هست. چالش قانون طلایی اینه که خودتون رو به جای طرف مقابل بذارید حالا اگر شما به جای اونها بودید اگر شما زنی بودید که علاقمند به روابط جنسی نیست دوست داشتید شوهرتون چیکار کنه وقتی به جوابش رسیدید همون کار رو بکنید امیدوارم که چیزی که در این مورد به شما گفتم کمی به شما در این مورد کمک کرده باشه حالا در این جلسه آخر دوست دارم که به موانع یگانگی اشاره کنم در تمام مواردی که تا اینجا خوندیم ما بسیار مثبتندیش بودیم سعی کردیم ایدال ها رو ارائه بدیم سعی کردیم الگوهایی به شما ارائه بدیم سعی کردم نمونه به شما ارائه بدم اما بر اساس چیزی که کتاب مقدس میگه و براساس اساس تفسیر مفسران گفتیم که این چیزی هست که خدا میخواد نقشه ازدواج از طرف خدا بوده و گفتیم که بر اساس کلام خدا ازدواج باید یگانگی بین یک مرد و یک زن باشه اونها برای این مقرر شدن خدا اونها رو به همین منظور طراحی کرده حالا وقتی که مرد و زن در این یگانگی با هم یکی میشن یگانگی فراتر از این واقعیت میره که اونها به عنوان نر و ماده باید اتحادی جسمانی داشته باشند ما به این سیمای لذت بخش یگانگی گفتیم اون یگانگی نیست بلکه جلوه لذت بخش یگانگی هست اما یگانگی چندین بود داره اون اتحادی جامع و فراگیر هست اگر به حلقه هایی که در موردشون بحث کردیم فکر کنید اولین حلقه رو حلقه گفتگو نام گذاشتیم دومین حلقه سازگاری، حلقه وسط محبت بعدی درک متقابل و آخری جلوه لذت بخش یگانگی یا روابط جنسی بود این تصویر شیوایی از یگانگی بود چون که تمام این حلقه ها به اون حلقه روحانی وصل بودند این حلقه روحانی بود که همه اونها رو یک جا نگه می داشت همه اینها ابعادی از یگانگی هستند که در موردشون صحبت کردیم و گفتیم بسیار خوب این الگو هست این نمونه هست هر هفته وقتی که یکی از این حلقه ها رو بررسی می کردیم ما به همه اونها اشاره کردیم حالا می کمی منفی باشیم گاهی لازمه که کمی منفی باشید. وقتی شما توماری در شکمتون دارید که شما رو میکشه لازم هست که اون پیدا بشه و قبل از اینکه شما رو بکشه از شکمتون خارج بشه، در حالی که پزشکان مشغول آزمایش هستن، وقتی که شما تحت معاینه هستید، شما میتونستید بگید شما آدم‌های نگری هستید. همتون دنبال چیز بدی در درون شکم من میگردید اما البته شما به همین منظور اینجا هستید. بدن شما مشکلی داره و پزشکان سعی میکنن بدونن اون چیه؟ وقتی یک دندون پزش در مورد یک دندون خراب که شما رو ناراحت میکنه صحبت میکنه و سیا یک دندون سالم و زیبای شما رو ندیده میگیره شما او رو آدم منفینگری چون که او فقط میخواد در مورد چیزی صحبت کنه که باعث اذیت شما شده. زمانی هست که باید به جنبه های منفی نگاه کرد و الان وقت اون رسیده. میخوام که به این موضوع اشاره کنم به موانع یگانگی، با اشاره به مدلمون به روش منفی چون که هر کدام از این ابعاد یگانگی که ما از جنبه مثبت به اونها اشاره کردیم میتونه جنبه منفی هم داشته باشه و مانعی برای یگانگی بشه مثلا ما گفتیم اگر شما گفتگو میکنید ابزاری دارید که این امکان رو براتون فراهم میکنه که بر روی اتحادتون کار کنید و اون رو حفظ کنید اگر گفتگو نکنید باکتری هایی هستن که در تاریکی رشد میکنن و شکاف بین شما بزرگتر و بزرگتر میشه روانشناس مسیحی که قبلا به او اشاره کردم و گفتم که روانشناس مورد علاقه منه دکتر هنری برانت مثال بزرگی داره که من بارها شنیدم او وقتی از دوم قرنتیان باب چهار صحبت میکنه به کار میبره درست در ابتدای باب وقتی پولس ما را تشویق میکنه که چیزهای مخفی عدم صداقت رو نشون بدیم او بر روی این آیه صحبت میکنه و این مثال رو به ما میده زوجی ازدواج کردند و خانه ای داشتن و بعد از بازگشت از ماحصل شب اول به خانه میاند و مرد زنش رو بغل میکنه و ضمن اینکه او رو بغل کرده طار انکبوتی در گوشه اتاق نشیمن میبینه اما چیزی به اون نمیگه و به روی خودش نمیاره فقط زنش رو بغل میکنه و چیزهای خوشایند میگه بعد اونها شام میخورند و وقتی زنش ظرف ها رو میشوره مرد از ظرف شستن و انتقاد میکنه زن به نوعی میرنجه اما چیزی نمیگه و فقط میگه خیلی خوشحالم که با شوهر خارق مثل تو ازدواج کردم خب این داستان ادامه پیدا میکنه و همینطور اینها روی همون هم باشته میشه یک شب اونها از کوه در میرند و دعوای مفصلی میکنند دکتر براند گفته این دعوا زمانی شروع شد که اونها باید چیزهای مخفی رو نشون میدادند اونها با همدیگر رو راست نبودند اونها چراغ رو روشن نکردند و افکار و رفتار بد مانند باکتری ها در تاریکی رشد کردم. پس اگر شما گفتگوی خوبی با هم نداشته باشید، فقدان گفتگو یا گفتگوی کم تبدیل به مانعی بر سر راه یگانگی میشه. همون چیز رو میشه در مورد سازگاری هم گفت. گفتیم که سازگاری چیزی بالاتر از فقط سازگاری در روابط جسمانی هست. چیزهایی هستند که شما دوست دارید در کل انجام بدید، اما وقتی شما وارد یک زندگی مشترک شدید، سازگاری مربوط به ارزش‌ها میشه. یکی از بهترین مثال‌ها برای این مسائل مالی هست. من اخیرا وقتی مشغول مطالعه برای آماده کردن درس‌های این دوره بودم، چیزهای تکان دهنده‌ای از دو محقق خوندم. هر دوی اونها این رو می‌گفتن، پس احتمالاً این حقیقت داره. بیش از پنجاه درصد از طلاق‌ها در آمریکا به خاطر پول هست. این آوره. یکی از این محققین میگفت آمریکایی‌ها بیش از هر ملت دیگری بر روی زمین پول دارند، اما بیش از هر ملت دیگری اکثر دعواهای اونها بر سر پول هست. آیا این به نظر شما تعجب آور نیست؟ اونها میگن بهترین درمان برای یک ازدواج اینه که هر دو به طور مشترک کار کنند. خوب چیزی که اکثر مردم هر روزه بر روی اون با هم کار میکنند پروژه ای هست به نام بقا. اونها فقط میخوان زنده بمونند و وقتی هر دو با هم برای بقا کار میکنند بر سر پول با هم دعوا میکنند. با همه پولمون کنیم؟ با وقت‌های اضافیمون می چی چیکار کنیم؟ وقتی وقت اضافه ای نباشه و پول اضافه ای نباشه دعوایی هم بر سر اون نخواهد بود. اما اگر مراقب نباشیم سر پول دعوا خواهیم کرد. وقتی شما سر پول دعوا می کنید، معنیش اینه که شما در عرصه ارزش سازگاری ندارید. من از تجربیات شخصی خودم میتونم بگم که مشکل پول میتونه یکی از بزرگترین مشکلات در ازدواج شما باشه. من فکر میکنم میتونم کتابی بنویسم در مورد تلهایی که بر سر راه یک شبان هست. من مشغول تاسیس دو کلیسا بودم. مخصوصا در موقع تاسیس کلیسای اول ما مشکلات مالی فراوانی داشتیم. ما یاد گرفتیم که وقتی مردم استطاعت مالی زیادی ندارن براشون سخته و نمیتونن که مقروز بشن. در حالی که همین مردم بیشتر از هر کس به دهکار هستند. من راه سختی رو یاد گرفتم. فکر میکنم میتونم کتابی در مورد روانشناسی قرض بنویسم. اگر کوهی از بدهی پشت سرتون داشته باشید و هر بار که حقوق میگیرید چهار پنجم حقوقتون رو صرف اون کوه بکنید برای پرداخت بدهی و فقط یک پنجم براتون بمونه که با اون زندگی کنید، خب اگر شما به اندازه کافی برای امرار معاش نداشته باشید، در وهله اول مجبور میشید دوباره قرض کنید و اون کوه بزرگتر میشه و حقوق شما ای کمتر و کمتر میشه. این کاملا ساده است. اگر شما بیش از درآمدتون خرج کنید، همیشه در جایگاه بدی قرار خواهید داشت. اساسا ما درآمد مشخصی داریم و معیارهایی برای زندگیمون و اگر بخوایم کمی بیشتر از اون معیارها زندگی کنیم، اون ما رو به مشکل میندازه. اگر شما متوجه بشید که زیاد بر سر پول دعوا میکنید، قبل از هر چیز باید بدونید که این نشانه ای از ناسازگاری ارزشیه. اما اون موقع باید مشاوره‌های درستی در مورد مدیریت کردن پولتون بگیرید. من و همسرم مدت‌های زیادی هست که بدهکار نیستیم و من به شما میگم که اگر بخواهید میتونید به اونچه که دارید قانع بشید و تصمیم بگیرید چیزی رو که ندارید خرج نکنید. این مشاوره یکی اکثر مشاوران مالی به شما میدن و قانونیه که میتونید در کلام خدا هم پیدا کنید. یاد بگیرید که به کلام خدا احترام بذارید و به مسائل مالی سر و سامون بدید. خوب، حلقه بعدی در یگانگی محبت هست اما میتونیم بگیم که اون میتونه برگرده و به صورت منفی در بیاد اگر شما سازگاری نداشته باشید ناسازگاری مانعی برای یگانگی هست اگر شما محبت نداشته باشید مانع جدی بر سر راه یگانگی شما وجود داره این میتونه اتحاد شما را از هم بپاشه و به همین دلیلی که در پایان اولین جلسهمون به کمک خاصی اشاره کردیم که من به اون چهار رمز روحانی گفتم بذارید باز هم اونها رو برای شما ذکر کنم چهار رمز روحانی اینها بودن من نیستم اما او هست و من در او هستم و او در من هست حالا شما میتونید این رو در مورد محبت هم به کار بگیرید من این محبت آگاپه که در اول قرنتیان 13 شرط دادیم نیستم اما او هست خدا هست مسیح محبته خدا محبته روح القدس محبته و اگر من در او هستم و او در من، پس من این توان رو دارم که چنین محبتی رو داشته باشم. این چیزی هست که شما باید بفهمید که اگر متوجه شدید، اون محبتی رو که گفتیم نیروی محرکه یگانگی هست ندارید، میتونید با کمک مسیح داشته باشید، چون که فقدان محبت یا خودخواهی رابطه ازدواج رو نابود میکنه. ادامه اون چهار رمز اینه، من نمیتونم اینگونه محبت کنم، اما او میتونه. من حتی اینو نمیخوام اگر شما رو راست باشید باید به این اقرار کنید اگر شما بدونید محبت چیه خب شما دلتون نمیخواد محبت کنید این برخلاف طبیعت انسان هست اما او میخواد و او میتونه و بعد اگر شما با فیض خدا همسرتون رو اینگونه محبت کنید میتونید برگردید و به رابطه ازدواجتون نگاه کنید و بگید این من نبودم بلکه او بود که این کار رو کرد من در او بودم و او در من مانع یگانگی که فقدان محبت هست میتونه ما رو متوجه مسیر کنه که او میتونه این امکان رو برای ما فراهم کنه که اونطور محبت کنیم. حلقه بعدی تفاهم هست و همونطور که اشاره کردم اگر ما همدیگر رو درک نکنیم کاملا مشخصه که شما مانعی سر راه یگانگیتون دارید. شما غالبا در مشاوره های ازدواج میشنوید که مردی یا زنی میگه همسرم منو درک نمی کنه و گاهی این حقیقت داره. اگر شما همدیگر رو درک نکنید، مانع بزرگی سر راه یگانگیتون دارید. این بسیار مهمه که به زندگی همدیگه علاقمند باشید. به اون روشی که توسط اون 18 سوال پیشنهاد کردیم، توسط اون قطب نمای روحانی کجا هستی؟ از کجا میایی، به کجا میروی؟ آیا از درخت ممنوعه ای؟ تو کی هستی؟ چی هستی؟ چی میخای؟ این بسیار مهمه که با زندگی همدیگه آشنا بشید و از روح القدس بخوایید که به شما حکمت بده تا همدیگر رو درک کنید این بسیار بسیار مهمه تفاهم عامل رشد یگانگی هست اما عدم درک متقابل مانع بزرگی برای یگانگی هست و بعد البته قبلا اشاره کردیم که و این کاملا حقیقت داره که اگر روابط جنسی اونطور که باید باشه هست اون موقع اون فقط ده درصد روابط زناشویی هست اون فقط وسیله برای نشان دادن یگانگی هست که به اون جلوه لذت بخش یگانگی گفتیم. سالها قبل زن من برای زنان درس روابط جنسی میداد و او به اون لذت بخش‌ترین تجربه در بدن انسان می‌گفت. همه اونها اینو درک می‌کردند. من این رو از زن‌های زیادی شنیدم. اما اگر روابط جنسی اونطوری که باید باشه نیست، اون موقع 90 درصد مشکلات به اون مربوط میشه. بسیاری از ازدواج‌ها بر سر همین مسئله از هم پاشیده میشن چون که یکی از طرفین کامیاب نمیشه و بعد این به مرور زمان ادامه پیدا میکنه تا زمانی که کس دیگه ای رو پیدا میکنند که اونها رو ارضا میکنه و بعد از اون یک مثلث به وجود میاد و این فرمول مصیبت باری هست که بسیاری از ها رو در هم میشکنه پس اگر روابط جنسی اونطور طور که باید باشه نیست اون میتونه مشکل بزرگی سر راه یگانگی باشه وقتی به حلقه محبت تمرکز کرده بودیم گفتیم اگر محبت مسیح رو نداشته باشیم ظرفیت و توان اون رو نداشته باشیم هرگز نمیتونیم محبتی رو که کتاب مقدس به عنوان نیروی محرکه رابطه ازدواج از اون صحبت میکنه داشته باشید خب این در تمامی حلقه ها صدق میکنه اگر شما مسیح رو نداشته باشید مسیح زنده رو که شما رو تقویت کنه به شما نیرو بده و قدرت بده کاری رو بکنید که لازمه این ارتباط هست اون موقع هیچ راهی نیست که تضمین کننده ای ادامه این رابطه باشه به این دلیل که ما به اون آیات در ابتدا اشاره کردیم که میگه اگر این به شما داده نشه یک انسان نمیتونه این چیزها رو بپذیره شما میتونید یک زندگی منظم داشته باشید شما میتونید رابطه‌ای باری به هر جهت داشته باشید اما بر اساس متا 19 از دهان خود عیسی گفته که مگر اینکه اون به شما داده بشه منظور روح القدسه منظور مسیح زنده است منظور قدرت خداست مادامی که این به شما داده نشه هرگز چیزی رو که خدا در موقع طرح نقشه ازدواج در سر داشت تجربه نخواهید کرد این در مورد سرپرستی بچه ها هم صدق کنه. همونطور که دیدیم رابطه ازدواج معمولاً با دو شخص شروع میشه که با هم ازدواج می‌کنند کل پیغام عهد جدید این هست که شما بدون بود روحانی در زندگیتون هرگز شخص شایسته ای نخواهید شد و همونطور که ما در مثال میبینیم این حلقه ها بر روی سر افراد هستند ما به طور فردی قرار هست که بعد روحانی در زندگیمون داشته باشیم که از اون حلقه بقیه ی حلقه ها در این رابطه ازدواج منشعب میشن میخوام نظر شخص دیگری به نام دکتر بیل برایت مؤسس دانشکده جنگ برای مسیح رو با شما در میون بذارم او مرد خداشناسی بود و رویاش این بود که تا سال 2000 تمام مردم دنیا به مسیح خواهند اومد. همچنین رویا داشت که ببین کلیسا بیداری و قدوسیت داره. او در رویاش دیده بود که میلیون ها نفر به خاطر جزوه کوچکی که او نوشته بود به مسیح میان. نام جزوه چهار قانون روحانی بود. جزوه من شامل هفت مورد بود و جزوه او چهار مورد داشت. و من میخوام که نظر او رو براتون بگم. او فکر میکرد که برای داشتن بود روحانی در زندگی مردم لازم این کارها رو بکنند تا تولد تازه داشته باشند و پیرو ایسای مسیح باشه. اولین قانون روحانی او میگه خدا شما رو دوست داره و نقشه خارق‌العاده‌ای برای زندگی شما داره. ما میتونیم این رو در روابط ازدواج اینطور به کار بگیریم. خدا شما رو دوست داره و نقشه خارق‌العاده‌ای برای ازدواج شما داره. ما چندین جلسه به این نگاه کردیم. قانون روحانی شماره یک اینه که خدا نقشه داره و اون نقشه خارق العاده است. همیشه اگر نقشه خدا باشه، عالی خواهد بود. قانون شماره دو روحانی اینه: جدایی بین انسان و خدا به دلیل گناه به وجود اومده. گناه انسان رو از خدا دور میکنه وقتی انسان به خدا میگه نقشه او رو دوست نداره، خدا به این گناه میگه و این سبب جدایی بین انسان و خدا میشه. دکتر برایت در کتابچه کوچک خودش یک نمودار داره. اینجا مشکل بزرگی هست که تصویر کوچکی نشون میده. انسان گناهکار و خدای قدوس توسط پرتگاهی بزرگ از هم جدا شدن. انسان گناهکار چطور میتونه رابطش رو با خدای قدوس درست کنه؟ چطور اون میتونه با خدای قدوس وارد یک رابطه بشه؟ این سوالیه که در واقع مفهوم کل کتاب مقدسه. حالا عده زیادی هستند که البته تا ابد هم همینطور خواهد بود. اونها فکر میکنند که با کارهای خوب انسان میشه پولی روی اون پردگاه ساخت. اگر انسان کارهای خوب بکنه، اگر به حد کافی کارهای خوب انجام بده، میتونه پولی بر روی اون پردگاه بسازه. بسیاری از مردم به این معتقدند و در واقع این چیزیه که اکثر مذاهب جهان تعلیم میدن. اگر شما از کسی توی خیابون بپرسید، آقا یا خانم، اگر شما ساعت سه صبح بر اثر حمله قلبی در رخت بمیرید و هر یز بیدار نشید هایا وقتی میخوابیدید به این فکر کردید که اگر این اتفاق براتون بیفته آیا به آسمون خواهید رفت یا نه؟ بسیاری از مردم چندان مطمئن نیستند. و اما اگر به نظر مطمئن می‌رسند، اگر از اونها بپرسید خب مبنای اطمینان شما چیه؟ جواب میدن خب من صورت سابامو پرداخت میکنم تا حالا کسی رو نکشتم، کسی رو کس زنا نکردم، دزدی نکردم، کارهای خوبی انجام دادم اما واقعا به این فکر کنید هرچند بسیاری از مردم به این فکر نمی کنند می تونید این سوال رو بپرسید از کجا میدونید دونید که آیا به حد کافی کار خوب انجام دادید یا نه؟ اگر به این به عنوان زخیره امتیاز نگاه کنید چندتا امتیاز برای وارد شدن به آسمان کافیه سوالی هست که توسط پولس رسول پرسیده شده اگر شما میتونستید این گونه شکاف رو پر بکنید پس عیسی مسیح چرا باید روی صلیب میمرد؟ عیسی مسیح آمد و مفهوم ظهور او همینه و او بر روی صلیب به خاطر گناهان ما مرد. این چیزیه که مفهوم عید قیام هست. او از مردگان برخاست و این مفهوم کلی پنتیکاست و این واقعیت هست که عیسی مسیح تا ابد زنده است. حالا وقتی عیسی اینجا بود و این برای من موضوع غیرقابل تصوری هست. او از پیشانیش به جای عرق قطرات خون جاری شد نزد پدر اینطور دعا کرد پدر اگر امکان داره منو بر روی صلیب نفرس. و پدر به پایین و به پسر محبوبش نگاه کرد و گفت امکان نداره تو باید بر روی صلیب بری و بعد پسر که محبوب پدر بود مسلوب میشه. حالا چرا پدر میگه امکان نداره تو باید مسلوب بشی اگر این امکان برای من و شما وجود داشت که با اعمال خوبمون روی اون پرتگاه پل بزنیم چه لزومی داشت که مسیح روی صلیب بمیره پولس این سوال رو پرسیده او گفته اگر ما میتونستیم با کارهای خوبمون عادل شمرده بشیم پس مسیح بیهوده مرد یه نفر این رو اینجوری توضیح داده تصور کنید این پرتگاه بین انسان و خدا مثل یک اقیانوس باشه که شما در یک سوی آن و خدا در طرف دیگر قرار داره خب چطور میتونید به اونجا برسید تلاش خودتون و سعی بر انجام کارهای خوب مثل شنا کردن میمونه. آیا شما میتونید با شنا کردن اقیانوس رو طی کنید؟ افرادی مثل ما به آب میفتیم و بهزودی غرق میشیم. شاید دهی چند متری شنا کنند و شناگران ماهر حتی شاید بتونن چند کیلومتر شنا کنند. اما در نهایت همه غرق خواهند شد. شما نمیتونید اقیانوس رو با شنا کردن طی کنید. هیچ کسی نمیتونه نجات هم یک چنین چیزیه. کسی که سعی بکنه با کارهای خوب خودش رو نجات بده مثل کسی که میخواد اقیانوس رو با شنات ای کنه قانون روحانی بعدی خبر خوبی به ما میده قانون روحانی شماره دو خبر بدی بود و قانون شماره سه خبر خوش است این انجیل هست عیسی مسیح به این جهان آمد که بر روی شکاف پل بزنه روی پرتگاه پل بزنه صلیب عیسی مسیح تنها راه برای انسان گناهکار هست که میتونه با خدای قدوس رابطه برقرار کنه. به این دلیل عیسی بر روی صلیب رب و بعد قانون روحانی شماره چهار به شکل زیبایی به تصویر کشیده شده. دکتر برایتون رو اینطور ترسیم میکنه. این کافی نیست که بگیم بسیار خوب من باور دارم که صلیب مسیح پلی بر روی اون پرتگاه هست. من به این باور دارم و من میخوام توسط صلیب عیسی مسیح این شکاف بین من گناهکار و خدای قدوس پر بشه. من از نظر اقلانی به اون باور دارم. من به اون نیاز دارم و میگم به اون باور دارم. این کافی نیست. اگر شما خبر خوشی رو که در کتاب مقدس اومده درک بکنید چیزی برای باور کردن هست که این سه قانون هست. اما کسی هم هست که باید بپذیره. او این رو اینطور به تصویر کشیده. دو دایره وجود داره. دایره شماره یک زندگی شما رو زمانی که شما در کنترل هستید نشون میده. یک صلیب کوچک، بیرون دایره وجود داره و در مرکز اون دایره تخت کوچکی قرار داره که روی اون کلمه من نوشته شده که به معنی نفس شما هست. در مرکز زندگی هر شخصی یک تختی وجود داره و مسئله بزرگ این هست. چه کسی بر روی تخت زندگی شما نشسته؟ اینجا فقط دو گزینه وجود داره، فقط دو احتمال وجود داره، یا عیسی مسیح روی تخت زندگی شما نشسته؟ و یا خود شما روی اون تخت نشستید. حالا اگر خود شما روی تخت زندگیتون نشسته باشید و همه چیز با اراده شخصی شما کنترل بشه در این صورت زندگی شما احتمالاً بی نظم و پر از هر و مرجه کسانی که آموزش دیدند تا به الکلی ها کمک کنند مثال خیلی جالبی دارند اونها میگن دلیلی که بسیاری از مردم الکلی میشن اینه که اونا فکر میکنن زندگی یک صحنه است و مردم در زندگی اونها بازیگرانی روی اون صحنه هستند و اونها کارگردان هستند و اونها سناریو رو می نویسن و نقش هر کسی رو به او میدن و به همه میگند که چیکار باید بکنن. او بسیار ناامید میشه چون هیچ کدوم از بازیگران طبق سناریو او بازی نمیکنن. اونها کاری رو انجام نمیدن که این افراد فکر می کنن باید انجام بدن. به این دلیل اونها به بطری پناه میبرند بسیار ناامید میشن، البته چیز بزرگی که اونها وقتی شروع به مداوا میکنن میفهمند اینه که چه کسی شما را کارگردان تعیین کرده چه کسی شما را مسئول زندگی هر کسی قرار داده؟ به عبارت دیگه اونها نه تنها میخوان زندگی خودشون رو کنترل کنند بلکه دوست دارن زندگی همه رو کنترل کنند. خب این منجر به بینظمی میشه نه تنها بینظمی در زندگی خودشون بلکه بینظمی در زندگی همه اطرافیانشون دایره کوچک دوم زمانی رو به تصویر میکشه که ما اجازه میدیم عیسی مسیح در زندگی ما حکمرانی کنه. اینجا دوباره تخت رو میبینیم که روی اون صلیب هست که نمادی از عیسی هست و کلمه من که نشان نفس هست در پایین تخت قرار داره. ببینید در این تصویر مسئولیت به عهده مسیح هست. این چیزی هست که کتاب مقدس در آیاتی مثل مکاشفه 3 آیه 20 به ما تعلیم میده. اونجا که عیسی میگه من پشت در استادم در را میکوبم اگر کسی صدای مرا بشنود و در را باز کند وارد میشوم و با او شام خواهم خورد و او نیز با من قبل از این آیه عیسی کسانی را که به اونها ولرم میگفت توبیخ کرده ایماندارانی که به لحاظ روحانی در جایگاه خودشون نبودند او گفته همه کسانی را که دوست میدارم سرزنش میکنم و تعدیب مینمایم پس قیور باش و توبه کن. من پشت در ایستاده در را میکوبم. ببینید این تصویر زندگی کسانی هست که چون خودشون بر تخت نشستن زندگیشون پر از هر مرجه و عیسی داره در میزنه و میگه آیا اجازه نخواهی داد وارد بشم و بر روی تخت زندگی تو بشینم تا تو نفست رو از تخت پایین بیاری؟ بگذار من مسئولیت زندگی تو به بگیرم. این قانون روحانی شماره چهار هست و بعد بعد از این چهار قانون روحانی مثالی به ما داده شده. اون کمی درباره ترتیب چیزها با شما صحبت میکنه. بسیاری از مردم فکر میکن اون به منزله نوعی تجربیات روحانی هست. می به اون معنی هم باشه. خدا به بعضیها تجربیاتی میده. مردم تجربیات یکسانی ندارن. به این دلیل وقتی شما از تولد تازهتون صحبت میکنید، اگر اون رو تجربه کرده باشید مردم خواهند گفت: چقدر و چطور اگر شما تجربه خودتون رو میگید و اونها میگن من فکر نمی کنم تجربه شما حقیقی باشه اما فکر می کنم تجربه من حقیقیه این شما رو به جایی نمی رسونه. نجات بر مبنای تجربه نیست اون بر مبنای واقعیت هاست واقعیت های انجیل خدا در تاریخ بشر دخالت کرد این مفهوم کلی کریسمس هست عیسی مسیح بر روی صلیب مرد و از مردگان برخواست این مفهوم عید قیام هست این چیزی واقعی هست او این کار رو کرد تا انسان گناهکار و خدای قدوس رو وارد یک رابطه بکنه حالا وقتی به اون باور کنید این تنها یک توافق عقلانی نیست کتاب مقدس از کلمه توبه صحبت میکنه وقتی میگه باید ذهنتون رو عوض کنید قلبتون رو عوض کنید و اراده و مسیرتون رو در زندگی عوض کنید معنی واقعیش اینه که مسیح زنده وارد زندگی شما میشه و کنترل زندگی شما را به دست میگیره و بر روی تخت زندگی شما میشینه. وقتی این کار رو بکنید و این رو بفهمید، میبینید که قوانین روحانی شماره یک و دو و سه و چهار همه حقیقت دارن. شما به واقعیت هاتون ایمان دارید. لکوموتی و این قطار کوچک واقعیت و همه این اتومبیل‌هایی که راه میرند واقعیت هستن. اینها چیزهایی مثل ایمان و احساس هستن. اما چیز دیگری هست که واقعیت و اون انجیل هست. انجیل در واقع از دو واقعیت بزرگ تشکیل شده. عیسی مسیح به خاطر گناهان شما مرد و عیسی مسیح از مردگان قیام کرد. اینها واقعیت‌های انجیل هستند. ما باید ایمانمون رو بر روی این واقعیت‌ها قرار بدیم. وقتی این کار رو می‌کنیم و از او دعوت می‌کنیم که وارد زندگیمون بشه و کنترل زندگی ما رو به دست بگیره، بعد از اون گاهی اوقات احساس و تجربه میتونه دنبالش بیاد. اگر شما در ازدواجی هستید که احساس میکنید بود روحانی در جایگاه خودش نیست، یادتون باشه که این چیزی شخصی هست. من خانمی رو میشناختم که یک گوینده بزرگ معروف بود و من مدت ده سال در تلویزیون با او بودم. بعد از دو سال که با او در تلویزیون کار میکردم، او ایمان آورد. او همیشه صحبت میکرد، اما شوهر او بسیار خجالتی بود. او میگفت. وقتی که او و شوهرش دعای نجات رو میخوندند و کار نهایی مسیح رو بر روی صلیب میپذیرفتند وقتی کنار تخت خواب زانو زده بودند و دعا میکردند شوهرش گفت به جای من هم دعا کن و زنش پاسخ داد تو به جای خودت دعا کن و من هم به جای خودم و البته او حق داشت. هر کسی باید این رو شخصا برای خودش انجام بده. به این ترتیب شما میتونید در بود روحانی ازدواجتون رشد کنید. خدا نقشه خارق برای زندگی شما و خانواده شما داره. خدا میخواد ازدواج شما رو برکت بده. دعای من اینه که زندگی خودتون رو به خدا تسلیم کنید و خانوادتون رو به او وقف بکنید تا او بتونه در زندگی شما بهترین های خودش رو جاری کنه. دوستان گلموت تشکریم که دانش روی وفاداری بودید و در این دوره خاص ما رو همراهی کردید. اگر تا به امروز قلب خودتون رو به روی عیسی مسیح باز نکردید، دعا میکنیم تصمیم بگیرید عیسی مسیح رو به عنوان ناجی و خداوند خودتون بپذیرید و زندگیتون رو وقف پیروی و خدمتون بکنید که تا مقدس هنوز چیزهای زیادی داری که به همه ما تعلیم بده و ما شما رو می میکنیم که شاگرد وفاداری باشید و همباره یاد بگیرید و خداوندمون عیسی رو پیروی کنید. تا برنامه دوباره دعا می کنم. برکات خدا بر شما بیاد و تشویق بشید هر روز اون رو پیروی کنید. فیض آرامش و محبت خداوندمون ایسای مسیح از حال تا عبدالاباد بر شما و خونواده شما بیاد. آمین.